نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاة کبر و رفع واذا و رفع دهی و قال سمیع الله لمن حمده رفع یده و قام رفع یده رواه البخاری می میفرمایند که حدیثی هست که نافع از عبدالله ابن عمر روایت کرده عبدالله ابن عمر وقتی نماز می استاد تکبیر الله اللہ اکبر در میبستند بستن بعد میرفتن به رکوع الله اکبر دستار بلند میکرد از رکوع بلند میشد می دستار بلند میکرد میاد به پای دست بلند میکرد بلند جو دستار بلند میکرد یعنی رفعت کردن در نماز حالا میگه توضیح بدهید عبدالله بن ابن عمر کاری رو کردن بله کاری در صحیح بخاری آمده. این ثابت هست ما اینو چندین بار توضیح دادیم در خود بحث هایی که پکنند در بایگانی ها این بحث وجود داره از همونجا بگیرید در کانال بذارید که مفید هست اما یک دو سی دقیقه دو دقیقه در این مورد مختصر صحبت کنم که خب باشه اول این است که عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی اینجا می آید که رفیدین کردم دوستان عزیز هم زحمت بکشم معترض ما بره داخل صحیح بخاری در کتاب کتاب استلالت صحیح بخاری اونجا بحثی هست قسمت مساجد، آباب مساجد اونجا حدیثی هست که عبدالله الله ابن عمر رضی الله تعالی نه اینقدر متبع از آثار نبی کریم بودند که هیچ کس این کار نمیکرد این اتباش میگن چون میخم چیز دیگر جلوتر بگم اینقدر متبع بودن اینقدر متبع بود که هر جانبی کریم پا گذاشته همونجا پا می میگذاشت میگن در سفر حج وقت تشریف بردن هر جانبی که نبی کریم احرام بسته همونجا احرام میبستن کجا نبی کریم نماز ظهر خونده همونجا نماز ظهر خوند کجا استراحت کرده همونجا استراحت می‌کرد امام بخاری دقیق غیر عادرا سا رو نویسه اونجا بوده سمت راست جاده فاصله اینقدر بوده اونجا ایستاده کار رو کرده بعد میره جلوتر میگه اگر زودتر میرسید همونجا توقف میکرد تا اون عملو انجام بده میره مکه بر میگه همین سوره کارو انجام بده یعنی روی پای نبی کریم پا میگذارد قدم به قدم قدم به اینقدر متبیع سنت بوده داخل سهی بخاری حدیث در کتاب الصلاه قسمت ابواب مساجد این حدیث وجود داره این اثوا شدیدش هست اینجا روایت کرده نبی کریم رفته دیگر کرد حالا دو نقطه ایجابی کم حدیث جلوتر تر صحیح بخاری نگاه کنید که بین سجدتین هم رفیدین کرده پس چرا دوستانی که این همی برافیدین اهمیت میدن که دست و بالا پایین میبرند؟ این جون مستحبات اما چرا بین سجده سجدی رفیدین نمی کنند؟ این هم ثابته با حدیث صحیح ثابتی، بین دوتا سجدی رفیدین بوده چرا اینجا نمی کنند؟ هر عذر تو اینجا برای ترکش میاری، همون عذر مدد هم میاری تو اینجا عذرم یاری که ترک شده ما اونجا عذرم یادتر شده اینجا چرا این چیزو نمیگن؟ این یک وقتی چیز ثابت هست به تمام معنی ثابته به همه اونها چند بزن همه اونها رو بگیر اونجا میکن بر اختلاف اونجا نمیکنی این حرام بگیر بر سنت عمل بکن به قال من نه وقتی رو حدیث عمل میگی کامل حدیث رو بگیر اونها رو بگیر رفت بین سجده میکن این یه نقطه ہی. نقطه بعدی گفتین عبدالله بن عمر خیلی متّبی سنت بود اما عبدالله بن عمر بعدها خودش رافیضه نمیکرد خودش رافیضه نمیکرد اون کس اینقدر متّبی سنت بود چرا خودش نمیکرد؟ امام شعبی عامر شعبی یکی از اجله تابعینی هست که یعنی حافظه فوق ای داشتی فوق العاده از کبار تابعین هست دو سال دو سال با الله بن عمر همراه بوده یک که من ندیدم که یک بار هم رافیدن بکنه نکرده حالا برید کتاب شهر معان و آثار نگاه بکنی از امام تهابی اونجا اور جاهای دیگر موارده اما حواله حاصل همین که برید نگاه بکنی اونجا میارید که رافیدن نکرد عبد الله بن عمر فقط یک بار کرد هر اینکه که یک صحابی خودش میگه نبی کریم کرده خودش حدیث و روایت میکنه دوباره خودش نکنه دو اشکار داره یا فراموش کرده و این امکان پذیر نیست چرا جوری فراموش اعمالی همیشه انجام بگیر فراموش نمیشه. دو این خلاف نبی کریم رفته اگر صحابی بدون نبی کریم کارو کرده و خلاف پیغمبر کار انجام بده خود عدالتو ساقت میشه زیر سوال میره چجوری جوری شخصی نمیدون دوباری خلاف پیغمبر انجام میده در حالی در نز الصحابه کلهم عدول همه صحابه کرام عادلان. اگر میخوایی نقد وارد کنی، بعد اول یه نقد بر عبداللار بپذیری که عادل نیست. حالی که هیچکس این چیزو نگفته. چرا عبدالله ابن عمر خودش این کارو نکرد؟ فقط اشاره میکنه که بوده، درست بوده. اما آیه ماند تا آخر مونده نموده تا آخر نموده. اگر میمان این کار ابن عمر هرگز ترک نمیکنه. یک روزی از عز... حضرت آل پرشاگرد ارشد عبدالله مسعود گفتن که نگاه کن فلانی میگن نبی مکرم اسلام رفیدن کرده نبی کریم و دیده حمید سایدیک دیده فرمودند که یک بار دید نبی که رفیدن کرده عبدالله مسعود هفت پنجاه بار دیده که نکرده عبدالله مسعود کی بود؟ عبدالله مسعود رضی الله تعالی نو بری صحیح بخاری کتاب المناقب را نگاه بکنید اونجا ب نالی و سواك. این همیشه مسواک نبی کریم دست همون بوده کفشه دست همون بودند، اینقدر با نبی کریم ملازمت داشته که ابو موسی اشعری می فرماید رضی اللہ تعالی. وقتی که من مدینه اومدم، اینقدر داخل نبی خونه نبی کریم رفت و آماده اون با مادرش، من فکر میکردن جز محارم خونه هست نبی کریم می رفت بیرون می آمد، بیرون می آمد، هر جا با نبی کریم بود، هر جا با نبی این شخصیت اینقدر ملازم بوده میگه نبی کریم نکرده خود الگم میگه تو یک بار دیدی دی اما عبدالله پنجاه بار دک نکرده پی کجا کدومی که از اینها رو میگیری بعد همون داخل کتاب المناقب صحیح بخاری اونجا شخصی از حضرت حزیب پرسید که این شخصی معرفی کن میخوان دین و یاد بگیرم کجا ها ابن ام عبد لغب عبدالله المسود بود و هر چی میکرد دین تظه میمیگه این اعتماد صحابی بود خب نقطه بعدی هم بگم تا از شفته رد نشه شاید رد شده ما میگیم یه نقطه بعدی مذهب امام مالک امام مالک امام اهل مدینه در مدینه متولد شد در مدینه رشد کرد در مدینه امام شد در مدینه وفات کرد یکی از اصول امام مالک این است که تعامل اهل مدینه عمل کرده اهل مدینه حجته اگر اهل مدینه بر چیزی عمل میکردن و عامل بودن اون در شریعت بوده چرا اینا میگن تبع تابعین اولاد صحابه ان یا تابعین یا تبع تابعین اینها وقتی که نمی پس نبوده اینها میکنند بوده میفرمایند که در مدینه کسی رفیده نمیکرد. در زمان من هیچ کس نمیکرد. تابعی نمی کردن، خیر و که همین ها هستند، اولاد صحابی همین ها کسی نمی کرد پس عمل متروک شده، اینها دواره نمی حالا چرا بخواه دنبالی اختلاف بگفتی؟ کسی کرد، مستحب، دی. واجب نیست، که نوازش خراب بشه و کسی هم نمی دلایل. دلایل زیادی هست، دلایل زیادی هست، ایک از ما گفتیم دلایل هست، برای طرف دلایل هست و اینجوری به اون